أعوذ بالله من الشيقان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله, آله آل الله. فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم الغائلة الله هب لك مولعا قطعا عليك وأن أبصر قلوبنا بفيء نظرها عليك حتى تخرق أبصر القلوب حجبا نور فتصل <تصفح> إلى معدن العظمة وتصير أرواحا معلقة بعز صفك، محمد بن علي صلواتك سلواتك عليه وعليه أجمعين. أذكر لكم قبل الزوالد اصل بحث مفاهیم چند نکته مقدماتی رو باید مرور کنیم یکی مفهوم شناسی کلماتی کلیدی بود که ما تنها کلمه مفهوم رو بررسی کردیم از بعضی دیگر از واجگان عبور کردیم مطلب دومی که باید بررسی بشه این است که بحث مفاهیم بحث از مفاهیم آیا یک بحث کوب است یا یک بحث سوق است و به درستی محققین از اصولی گفتن که بحث سوق است و یه مسئله سوق رو داریم بررسی میکنیم بحث دیگری که باید مطرح بشه این که همه یا غالبا گفتن که در مسئله مفهوم دلالت مفهومی یا معنای مفهومی بین این معنای مفهومی و معنای منطوق یک تلازمی هست و اون تلازم پیونده بین این دو معناست اگر این تلازمی فرض شود او وقت خواهیم گفت که معنای مفهومی هم داریم از سوید که اینجا چند تا هست که این روز به اونا بپردازیم اینکه چه ملاکی برای تلازم هست و چه ملاکی میگیم تلازم هست که اگر بود بگیم دلالت مفهومی و معنایی مفهومی هم علاقه بر معنای منطقی داریم ملاک تحقق تلازم و ملازمه التزام معنای التزامی چیست معنای مفهومی گفتیم معنای التزامی معنای منطقی است من قبل از اینکه به این بحث بپردازم یه نکته را عرض کنم اینجا حسن استفاده را بکنیم و اون این است که مرحوم میزهای ناینی در خصوص ملاک مسئله اصولی گفته است که مسئله اصولیه آن است که کبرای قیاس استنباتی رو تشکیل بده و برویلیه سیستماتی تو تشکیل بده معنیش این میشه که هر مطلبی که در اصول بحث بشود این خاصیت رو نداشته وجه مسئله اصولی نیست شاگرد ایشون مرحوم مظفر دیدود مطلب استاد با این اطلاقش اشکال داره گفته بود که مسئله اصولی است که کبرآ یا صغرا یک یا سیستماتی رو تشکیل بدهد. ما در مبحث مسائل پژوهی که مفصلاً زمانی که وارد شدیم مفصلاً بحث کردیم هر دو رو دارای اشکال دانستیم. گفتیم مثلاً مسئله اصولیه اولا غیر از مطلب بحث اصولی است. ممکن است بعضی از مطالب در اصول بحثی که مسئله نباشه از توش مسئله در نیاد یا به تعبیر دیگه بگیم که مسئله یه اصولی غیر از قاعده اصولی است شما یه وقتی بحثی میکنید ازش قاعده در میاد که به درد به, به کار استنبات میاد میشه قاعده اصولی <تصفيق> یه وقتی هم ممکنه بحث کنید که از توش قاعده به دست نیاد ولی مطلبیه که باید بهش پرداخت مثلا وقتی ادعا شده قیاس حجت است باید بهش پرداخت وقتی پرداختید آخر سرم لکسی میگیرید که نخیه قیاس, اس... قیاس حجت نیست پس قاعده از توش در نمیاد قاعده که به درد استماد بخوره خب این مسئله اصولیه است این اصول باید بهش بردازه مطلب خارج از اصول نیست ولی قاعده اصولیه نیست لاقل دو تا مطلب رو در مقابل فرمایش این استاد و شاگرد باید بگیم چون مطلب استاد یعنی میزایی ناینی غالباً پذیرفته شده دو تا مطلب باید بگیم یکی اینکه اولاً مسئله اصولی محدود نیست به کبرای قیاس استنباطی این اولاً میتواند سغرای قیاس استمباطی هم مسئله اصولی غلام دادست چون که شاگردیشون برون مزفر برموده دومی که اصولاً مسئله اصولی اعم از است که به مسابه مقدمه در قیاس استمباطی مرده کار برد داره ما در اصول فقط از مقدمات و اناصر تشکیل دهنده قیاس استنباطی بحث نمی کنیم ما از مسائل بحث می کنیم که آخر به درد به مسابهه یک جزئی و انصری از قیاس استنباطی اصلا پذیرفته نمی شه ما رد می حجیت قیاس رو حجیت از صورت که بعضی از مدعیات بعضی از مدارس و م... مکاتب اصولی رو و علاوه بر اینکه اون جایی هم که به کار قیاس استنباطی میاد لزوما کبرى و فقط کبرا یا صغرا ای قیاس نیست <تصفح> چرا که ما گاهی قاعده به دست میاریم در مباحث اصولی گاهی هم ثابته قاعده اینکه مثلا زواهر حجت است یکبراست یه است و در قیاس استنباطی به کار میاد میگه آقا این آیه ظهور دارد در فران مطلب این میشه سغرا کبرایی دارد بنامی که ظاهر حجت است ظاهر کتاب هم حجت است بعد استجال میکنید اما این بخش از مطالبی که در اصول بحث میشه که از اونها به قاعده میرسیم بخش بخشی از علم اصول شاید کمتر از نیمی از مطالب و مسائلش در علم اصول مطرح میشه. مطالب و بحثایی فراوان دیگری هم در اصول مطرح میشه که اینا مساله اصولیان. از مبانی و مبادی گرفته، مبادی غریبه به تعبیر ما مب... مبادی ممتازجه گرفته تا زوابتی که برای کاربرد قواعد لازم داریم. این بعضی از بحثایی که میشه زابطه است برای قاعده خود قاعده نیست اینها مسائل اصولی هستند. حالا اینجا از مرحومه های میزای ناینی ازمال الله تعالی علی سآل میکنیم که خب یا تکریب ما چیه اینجا شما پذیرفتید که ازمتموشه اینجا شما پذیرفتید که بحث در ما نهنفی است کبلوی نیست یعنی چی؟ یعنی ما میخواییم اینو حل کنیم اینو روشن کنیم که آیا مفهوم وجود دارد یعنی یه همچین دلالتی هست مثلا دلالتی به نام مثل مثلا مفهوم اولویت مفهوم مصابات مفهوم مکان مفهوم زمان مفهوم وست مفهوم لقب داریم یا نداریم بحث وجوده نیداریم بحث میکنیم یعنی یه مورد خاصی از ظهور رو داریم بحث میکنیم یه سغرا رو بحث میکنیم بس سغراویست اگر پذیرفتیم که مثلا چیزی به نام وفهوم وصف و شرط و لقب و نمی دارم و کذا و کذا داریم بعد یه کمرار رو زیمش میکنیم کبرا چیه؟ کبرایین است که زوایر حجت‌اند. اون وقت مسئله درست میشه. پس اینجا بحث سهرویه. حالا از آیه ناینی باید سؤال کنیم که حالا که بحث سهرویه چرا راقظ روش بحث می‌کنین که واسه اصولی نیست که تمام ابلاعی شما. شما گفتید فقط مسئله اصولیه است که کبرای یا سیستماتی قرار بدین که بشه صغرا این نکته اینجا حسنسو استفاده ر بکنیه. حال تعریزی و داده باشیم گرچه این میتونه در ذیلی از این جهات بحثا بشه اونجایی که ما از اینکه آیا این مطلب اصولی یا فقهی ماهیتاً چیز هویت در معرفتی این مسئله چیست اونجا هم باید بین بحث بپردازیم حالا اینو به ذهن مرید ارسل کردیم بفرمایید شما بله. شما تمام مباحثی رو که در علم وصول بحث میشه اگر وارد شید ملاحظه میکنید که لایه لایه است اون لایه نهاییش از توش قاعده در میاد یه کسری که ما در مقام بحث داریم در مواهز حوضه داریم اینه که خیلی از مطالب رو به صورت بسیط بحث میکنیم نمی آیم و تحلیل کنیم بشکافیم لایه های زیرین بحث رو بیان کنیم اگر لایه های زیرین بحث رو بیان بکنیم میبینیم اونقدر مطالب در اصول داره مطرح میشه که از جنس تولید قاعده نیست خودش قاعده نیست مثلا شما در مقدمی واجب یه مدگذاره دارید به نام اینکه مقدمی واجب واجب است. این خوبشااهده و اگر بپذیریم که مقد واجب واجبیقاد است. اما پیرامون مقدمی واجب چقدر بحث می‌کنید؟ این همه بحثایی که می‌کنید همش راجب این نیست که اثبات کنید مقدمی واجب واجب است. کلی مقدمات بحث می کنید. کلی مقارنات بحث می کنید. اینا بحث از اثبات رسن مقدمی واجب واجب است نیست. بلکه مسائلی است بعضیش مبادی هند مقدماتند پیشفرضهان بعضی دیگه جواباتی هستند که میگید عقل و حجت تسخیر خیلی این بحث اصولی باخت با چه چگونه عقل رو بعد به کار ببندیم کتاب حجت است بله درسته اما کتاب رو چگونه در استنباط بعد به کار ببندیم این چگونگی کلی حرف در بحث می‌کنیم اینا به ذابطه است اینا هیچ کدوم قاعده نیستند در نتیجه اگر ما یک از کارایی که بشود کرد الان مجال بحثش نیست ما می‌خوایم داری بحثا رو فشارده ترخ کنیم که به بسیار دیر تمام نشه بحثام روزانی با یه وقتی با بعض از دوستان مدت مدیدی رو این موضوع بحث کردیم که کل علم و اصول رو تیزیه تحیزی کنیم همون موقع به اون دوستان گفتم که شبیه به این که یه خود رو رو بذارن یه جا بعد شما شروع کنید اینو رو جز به جز بازش کنید همه اجزایش رو باز کنید پخش کنید تو یه محبته ای بعد از نو بخواید اینا رو ببندید به سلو مهندسی معکوس کنید اصولوادی هم چه کاری کرد؟ اون موقع معلوم میشه که در اصول چند گونه مسئله داریم وقتی این کارون زمان شد با دروغه طبقه‌بندی اینجوری اون زمان انجام دادیم اتفاقا بر محور کیفایی هم گفتیم این کار بشه طولانی شد یعنی چند سال تو کشید این کار خرد خرد هفتگی به اصطلاح دوستان میومدند بحثم کردیم به حال ما گاهی یه قاعده داریم اگر بخویم رأسان همون قاعده رو بحث کنیم علم اصول میشه مثلا صددرصد اما یه مرتبه یه کتاب دوازده جلدی اصول الفقه شف حسین هلی رو داریم در اصول این ماله چشیه بر این که بحثای پیرامونی فراوانی مطرح میشه و اون بحثای پیرامونی مسئله اصولی هستن قاعده اصولی نیستن اما مسئله اصولی هستن یعنی باید اصول به اونا ببردازه این عرض ماست بمیزم خب از کنم که <تصفح> مطلب سومی که باید بهش بپردازیم، از کردیم این است که گفتن که ما هم از کردیم بحث مفهوم مفهوم معنای التزامیه معنای تضمنی نیست، معنای تلازمیه. خیلی قبول حالا بحث بر سر اینه که این تلازم چگونه فهم میشه ظابطه این که ما یک حلازم بین دو معنا فرض کنیم چیه مدلول حلازمی رو که اگر اتفاق افتاد اون رو مدلول مفهومی میانگاریم می ملاکش چیست در اینجا چندین نظریه مطرح شده نظری مرحوم آخوند و در مقام تعریف ایشون به خاطر اشترشید از کردیم اجمالا نهاز میکنیم اولی نظریه رو بگیم نظریه مرحوم آخوند مرحوم آخوند آمد گفتش که در تعریف مفهوم گفت حکمون انشائیون او اخباریون لازم لخصوصیت فی المعن المطابقی الالتمم عبارات اخوند علو خلاصه کردیم اون جلسه قبل این عبارت ورده بودیم لازم الخصوصیه فی المعنا المطابقی الذي اورز من اللفظ راسا لا اصل المعنا المطابقی نفسه سواء ثبتت هذه الخصوصیه بالوضع او مقدمات الحكم و سواء وافقه فی الايجاب و سلب او خالفه این تعریف مفهوم با تلخیص عبارتشون و یه مدد تصرف و عبارتشون از ازر مرحوم آخون میشه خب این جایشون چی می فرمودن؟ فرمودن که مفهوم عبارت است از یک حکم انشائی مثلا امر که زیدون فکر ما او اخباری دو جور ما مفهوم داریم چون حکم اصولا میتواند دو جور باشد که لازمون که لازمه لخصوصیت فل المعنا المطابقی در اون معنای مطابقی و منطوق این لازمه خصوصیت اون معنای منطوقه نه خصوصیت خود معنای منطوق در معنای منطوق و مطابقی خصوصیتی هست که این معنای مفهوم ملازم اون خصوصیت است نه ملازم خود معنای منطق ایشون دارن در واقع ملاک میدن میگن چه چیزی معنای مفهوم میشه اونی که بین این معنا و یه خصوصیتی که در معنای منطق هست ملازمه باشد این بشه معنای التضامی اون خصوصیت اون ویژگی. در این صورت در واقع پیوندی بین معنای مفهوم و معنای منطوق برقرار است بواسطه چرا که این معنای مفهوم التز... معنای التزامی اون ویژگی و خصوصیتی است که در معنای منطوق وجود دارد نم ملازمه و معنای التزامی خود منطوق است این یه نکته رو نکته دیگری که کردن که سواا فرقه میکنه که این خصوصیت که ما داریم میگیم در معنای منطوق هست این خصوصیت با وضع اثبات شود یا به مقدمات اکمت شما کشف کنید که واضح اصلا این خصوصیت رو قرار است در معنای منطوق یا اینکه با مقدمات حکمت بگیم آقا این آقا در مقام بیان بوده و این جهت در نظرش بوده است فرق نمیکنه. به اضافه باز فرمود فرق نمیکنه که اون معنای مفهوم موافق باشد در نظر ایجاب و سل با معنای منطور یا نباشد یا مخالف باشد یعنی مفهوم موافق باشد یا معهوم مخالف یه وقت میگه که و تَقُلْ لَهُمَا اَفْ اوف نگو معنای مفهوشی میشه یعنی سیلی هم نزن خب این معنای موافقه دیگه میگه نه بگو و نه سیلی بزن و نه تشر بزن نه به احترامی کن معنای در واقع موافق و به صلاح هم به لحاظ ایجابی و سلبی با معنای اصلی با معنای منطوق داره یه وقت هم عکس شده این زیدون فا و این لمیجه چی؟ فلا معنای مفهوم شد از به اصلا جهت سلوی و ایجابی با معنای منطوق یکی نشد دیگه اون میگه اکرم ها معنای مفهوم که لا تکرم خلاف شد خالف و ها این کل مطالب مرحوم آخوند اما ببینیم آیا ملاکی که ایشون فرمودن یا مجموع این عبارات که ایشون فرمودن پذیرفته است <تصفيق> اول از بکنیم شما می که تلازم باشد بین معنای مفهوم با خصوصیتی که در معنای منطق است این سآلات از بقیه هم باید بکنیم سالی میشه که آیا اینجا ما داریم بحث از دلالت لحوزی میکنیم یا دلالت اقلیم ما آیا مبحث مفهوم رو و مفاهیم رو یه بحث لحوزی میدانیم جز مباحث لحوزی یه علموصول میکنیم و آیا بحث از مفاهیم یا بحث ادبی است بحث زبون شناختی است بحث لفظیه یا بحث عقلیه آیا این مبحث رو بعد ببرید توی مباحث عقلی اصول مثلا مستقلات تغلی غیر مستقلات تغلی اونجا مطرح کنین <تصفح> یا در خلال مباحث الفاظ خلال مباحث الفاظ بحث می‌کنی لازم آیا عقلیه یا لحظی و بصیره آیا بحث بسری نه که <تصفح> وزعن واضع لغت عرب آمده جمله شرطیه رو این گونه وز کرده که دو تا معنی داشته باشه وزعن دو تا معنی داشته باشه یک معنای منطوق اینجا اکف اکره خب اگه آیزید وارد شد سریعت پاشین تذیرهایی کنیم بعد گفته یه معنای دوم هم من وضعه می کنم و اون اینکه ان این لمیجه فلا تو کرده این هم دوم این معنای مفهوم و مفهوم مخالفش حالا در الموسو بحث از مفهوم اگر می‌کنیم بحث از مفاهیم می‌کنیم از مفهوم شرط بحث می‌کنیم از مفهوم جمله شرطیه آیا داریم بحث از این می‌کنیم که لحه جمله انجاعکم فکر مو به لحاظ لحظی و وضعی دلالت دارد که اگر نیامد ولی اکرام نکن؟ اینکه که نیامد اکرام نکن دلالت لفظیه میخوام ببینیم آیا لفظ اینجا اکز زیدون فا اکرمه لفظش دلالت دارد بر این که اینلم یجه فلا توکرمه دلالت لفظیه یعنی دلالت وضعیه یعنی واضح اومده برای این جمله دو تا معنا گذاشته یه معنای منطق یه معنای مفهوم و میخوایم حالا کشف کنیم این واقعا معنای مفهوم گذاشته اینو میخوایم بحث کنیم الان. یونیورسال تلازمه مهم خامزه تلازمه که بین اینکه ان لم یجئ فلا با اون معنای منطوق و اصلی که اگر آمد اکرام کن به یه خصوصیتی درونه که بالاخره بین این دو معنا پیوند میخوره میخوام می خوام بگیم تلازم و عقلیه میگه آقا وقتی مولا گفته اگه اومد اکرام کن نعمت نمید اکرام کنی نایمده بر ندار مثلا بنا بود بش بدی میوهش بش بدی اینا رو مثلا پست کنی براش بگی حالا که نایمده خیلی خوب مولا گفته بود اینجا اکف اکرم ها حالا نایمده درسته ولی من از انوال مولا بر میدارم قضا و میوه و شیرین و این رو با اسلب میفرستم مثلا مولا نمیتونه فرضا بیاد بگه آقا مگه من نگفته بودم که انجا اکبرم یعنی ان یعنی یجه فلاتو کرمو بعد میگم که آخه من این ان لم یجه رو نفهمیدم بعد مولا میتونه بگه که بابا وازا اصلا اینجوری معنیه اینجور وازع کرده بودی که دو تا معنی داشته باشه این جمله اینطوریه یا نه او میتونه اون نمیتونه بگه که واژه چنین وضعی کرده و لفظ این دلالت رو داره او میگه که آقا شما که عقل نداری من بهت گفتم اگه اومد اکرام کن چی گفتم اگه نیمد اکرام به به اکرام نکن. به چی در رابطه این حرف نزد مثلا بعد شما ممکنه بگی که نخیر دیگه بالاخره وقتی میگی اگه اومد اکرام کنی یه نه نکندی نکن این کار رو اینو عقل من داره میگه تلازم هست در واقع یه یافت عقلیه میخواهم بگیم که این که ما بگیم در صورتی معنای مفهوم آن معنای مفهوم میشود که ما یه ملازمه رو کاش کنیم چون معنای مفهوم معنای التزامی و معنای منطقه میگیم خب این بس که لفظی نمیشه چون وقت این بس شغلی. بین بلغت و در وصال که بهتره یا بگیم و و در چی وجود نداره از در این نقطه است که ما میخواییم بگیم شما که میفرمایید به دلالت التزامی معنای مفهوم رو میفهمیم این میشه التزام تلازم ملازمه یه مطلب عقلیه آیا؟ یا بلغرینه باشه که در بلاغت هم اینجا مطبول هم کلن و یا جدن اصلا داخل دلالت وزد مواجیم یه بلوز داریم و بلغرینه که شما مفهوم ولی بحث هر متلی رو ساخته میشه منظور نیست که ساخته میشه و که میشه به عبارت قشنگ شما التزام نه عقل بس عقل و چشوره فلسی و با سایر قلعس به خوب این قرینه ما اینجا چیه اگه فرض کنیم که یا الفاظ خارجی یا یا خوب حالا اینجا ما آیا داریم از لفظ استفاده میکنیم یعنی قریینمون قریه لفظیه است مقالیه است به لفظ استفاده میکنیم یا مقامیه کدوم از این دو قریین است یا نه نه خب این قرینه همین شما بفهم به قرینه درم ارزمینه است که بس سوال ما الان از آیون اینه که این که میگید امتلازم هست معنا معنای التزامیه این التزام ها از کجا پی میبریم آیا از لفظ پی میبریم یعنی دلات لفظ لفظ دلات بر این التزام دارد یا نه ما از طرق دیگه طرق دیگه چی عقلیه بلاخره یا باید از لفظ اینو فهم کنیم استیاد کنیم مصفاد از لفظ باشد یا باید به مدد عقل اینو برسیم دیگه ایرادی نداره مسئله فرقان میکنه مسئله ما الان اینه میخواییم این مسئله رو این جواب بدن نقطه تمرکز ما اینه که از بکنیم که آقا شما که میفرمایید اینجا تلازمی هست و نوعنا میگه تلازم باز کنیم کن جواب شود بدیم ما اشکال رو نکنیم رد بریم آیا این تلازمی که میفرمایید وجود داره و با تلازم رو پول قرار میدیم برای این که اثبات کنیم معنای مفهومی داریم. به ما بگید که این تلازم رو بلاخره حالا به تعبیر شما با عنوان قرینه قرینه لفظیه داریم یا قرینه عقلیه من ارز میکنم که شما بگید که آیا میخواد بگید واژه اصلا آمده برای جمله شرطی دوتا معنا قرار داده گفته ها من دوتا معنا میتونم از این, این جمله بگیرم یک معنام ن و معنای اصلی منطوق و عین م... در واقع مدا دیگری ملازم شو هر دو مضوللح منه آیا اینجوری اگر این دووار و سری این خیلی خوب میشه لپسی. اما ظاهرا اینطوری نیست اصولا تلاظم یه مطلب عقلیه این ادراک عقله اگر این اشکالی که مطرح می شود اینجا این می شود که خب مسئله شد قللی به مسئله دلالت لحفظی نیست و این مطلب باید بره توی مثلا مباحث عقلی علم وصول و نه توی مباحث لحفظی وصول. این دسلال نکته اول اشکالی که میخوایم بکنیم. توجه دارم به اون دلالات سلاس. درست؟ ببینید اینجا بحث اینجا بحث نظیر مقدمی واجبه اونجا همین بحثو میکنیم اونجا میگیم که آیا ملازمی عقلی وجود داره بین وجود به زل مقدمه و مقدمه یا نه بعد اشکال میکنم میگن که خب این میشه دلالت در واقع عقلی وقتی میگید که عقل چون این ملازمی رو ادراک میکنه این میشه عقلی سازیم که اصلا نداریم. هر هر یه کاری نه نه. نه این بورهانه اینجا نه نه نه مسئله مبارهانه در همین بحثم از همین تعبیرم استفاده کردن بازی. ببینید اون هم همین میگیم اون جام میخوایم بگیم ببینیم. نه عقلان اینجا عقلان یعنی من. نه. این،, این تعبیر, تعبیر جنوالی عقلن به عنوی درکنه فهمنه معلوم مسئله من این نیست عقلنی که ما میگم یعنی فهم عقلانیست یه یافت عقلانیه در مقدم واجه من بحث بستن همینه بس اول میگن خب پار سال, سال بحث کردیم یا تونه دیگه گفتیم آقا اگر کسی کسی اصلا منکری نیست که مقدم واجب اقلا واجب خب معلومه که شما بخوایی پشت وان باید نبرده اون بذاری این که معلومه که اقلا معلومه دوا بستر که آیا اقلا ملازمه هست یا نیست اقلا واجبه یا نه دوا بستر اینه که آقا وقتی گفت سله خود لفظایی دلالت دارد بر مثلا تحصیل تهارت یا نه اینجا هم همون بحثه دعوا دلا بر سر همینه که شما آیا میخواهید بگید که مفهوم معنای مفهوم به دلالت لحظی و با وضع واژه به دست میاد اینو محاسبه کنیم یا دارید میگید که نخیر آقا این معنای التزامیه یعنی یه ملازمه ای هست بین معنای مفهوم و منطوق الان دعوا بر اینه عموما هم قبول دارن که دروغه بس معنا معنای التزامیه است باشه ببین. چرا در تقلیل ارزش؟ کلام دیگه دارم میگم تصویر میکنم تنزیرا میکنم میگم مثلا در مقدم واجب چه میگیم اونجا نمی‌گه بلغرینه، اینجا من از کردم شما بگید غرینه چیه؟ شما میگید بلغرینه یعنی چی؟ چون غرینه. نخیر این محاسبه عقلیه. عقل میگه آقا مولا گفت انجااک و عمل خب عکسش پس عکسش دیگه فیلمم تجه فلاسا کنم دیگه این محاسبه عقل قرینه اینجا نیست یعنی شما به قرینه پیدا نمیکنید به این قرینه مثلا به مقدمات فکر در محرحال همه بحث هرچم شما تاکید بفرمید همه بحث بسرینه باید به جواب بدید که آیا الان من دارم این مفهوم رو به مدد لحظه استیاد میکنم یا به مدد عقل استیاد میکنم هر دو چطور هر دو عضو قرائن با با دیگه به این اینجا... خون چیه من سالا می بود که می چون قرائن چیه قرائن موجود در کلام قبل و بعدش چون حالا در همین مثالی که میزنیم در همین مثالی که میزنیم انجا که زید فکر فکرمو قرائن چیه آیا قرائنی هست یا نیست چیه قراین ممکنه, ممکنه نباشه نباشه اصلاً اصلاً خوب اگر اگر این اون چیزیه فحص که دلارت میکنه که به در اخر که مردش کاری میگه نگه دارم یا به این معنی که از کجا میفهمیم؟ اون از کجا میفهمیم؟ از, از, از چه تو اونم خوبی هستی که بدی هستی نه در حالت نه در خب بله اونجا اونجا به طور مشخص معلومه قراره قرائن مثلا مقامی است یا آدم بسیار رو میگیم واقعا آدم خوبی هست یعنی خیلی آدم بدی است اون اصلا صددرصد نمد قرینه اونجا هر قرینه حالا در هر حال اینو شما تحمل بفرمید صح بدید که اینجا می‌فرمید لزومن قرینه چیه قرینه الان یعنی اگر مولا آمد یه وقت بگفت که اینجا اکفاکرم چیه قرینه قرینه هست یا نیست اگر هست چیه اگر چیستیش معلوم شد بلاازه هستی بفرمید که خب این چه جنس قرینه‌ای است عقلی یا لفظیه در هر حال بحث ما از اون محورش خارج نکنیم ما یه سوال داریم که اشومیم تلازم این تلازم عقلی، اروپی، لحظی به ما بکنید. قاعدتاً بحث به سر لفظه نیست. چون کسی نمیتونه ادعا کنه که آقا این تلازم در لحظه یعنی واضح آمد این تلازمو برقرار کرده. و ایلال دلیل نزدش بگه مثلاً یه خصوصیتی در معنای منطوق هست که با اون خصوصیت ملازمه است پس معلوم شود که بس عقلی است. حالا عرض ما همینه اگر این شد، این سوال مطرح می شود که آیا این بحث از جنس مباحث به لحظی می یا نه یه نکته دیگری که باز اینجا می شود مطرح کرد این است که این تعبیری که مرحوم آخوند کردن اینجا این فاقد شرط مانعیته برای اینکه ایشون می که وقتی ملازمه هست بین معنای منطوق و معنای مفهوم ولو بین معنای مفهوم و یه خصوصیتی در معنای منطوق خیلی خوب بلاخره ملازمه هست حالا که ملازمه هست پس میشه چی؟ مفهوم اگر ملازمه رو اثبات نتونیم بکنیم مفهوم نمیشه دلت مفهومی نخواهیم داشت میگون خیل خوب همین حرف راجع مقدم واجب میگیم میگیم آقا بین مقدمه واجب و زل مقدمش خود واجب ملازمه هست یا نیست؟ می جو هست حالا با تعریف شما مقدم واجمیش میشه جز مفاهیم چون مدازمه خصوصیتی در لفظ است که اون را نه خصوص در معنا هست نه لفظا نگید نه از کجا ما داریم به لفظ برمیگردونیم معنا دیگه بره نگفت لفظ از لفظ ایشون مایه نذاشم میگونم معنای مطابقی که با لفظ اراده شده درش خصوصیتی هست در معنا خصوصیتی هست که به این معنای مفهوم و اون خصوصیت ملازمه هست و اگر اینو اداروی میکرد و اگر بشود اینو اثبات کرد که آن لفظ اصلا این وسط واسطه ای فرد تولید مفهومه خب دعوه حل بود دیگه لفظیه. بس اشکال دومی که وارد میشه این است که تعریفیشون مانع نیست مقدم واجب هم جز مفاهیم میشه چرا؟ بر اینکه که این سال که های مقدم واجب واجب است یا نه بین این مده با این خود از مقدم واجبه و ملازم بین اینا هست اونجا هم باید بگیم خیلی خوب مقدم واجب هم باید بری تو مفاهیم یک از مفاهیم هم مسئله مقدم واجب واجب است است چرا این همین تحریف این رو میکنه اشکال سومی که مطرح میشه این است که مرحوشه صدری این اشکال رو مطرح کرده ایشون گفتن که چه اون معنای مفهوم متا موافق باشد به اصلا همسو باشد با معنای منطوق ایجابن یا سلبن چه نباشد اینجا اینکه معنای موافقه و مطابقی در ایجاب و سلب رو از مفهومی که مرده بحث ماس الان قلمداد کنیم این در واقع ارجاع نمیشه به خصوصیت بلکه این لازم خود معنای مطابقی میشه در واقع دارید میگید که معنای مفهوم ایجاباً و سلباً موافقه با معنای منطوقه یا احیاناً مخالف چون گفت که چه موافق باشن ایجابه و سلباً چه مخالفه چون خالفه بود داریم میگیم شما الان دارید با خود معنای منطوق می سنجید در حالی که در ملاک گفتید گفتید ملاک وجود ملازمه و معنای التزامی این است که در معنای منطوق یه خصوصیتی است که بین اون خصوصیت و معنای مفهوم ملازمه هست اما اینجا آمدید شما دارید می سنجید معنای مفهوم را از ازر بودن و بودن با معنای منطوق خود معنای منطوق فاموش کردید چه نقطه ای رو و چه چیزی رو پل قرار دادید بین معنای مفهوم و معنای منطوق این سه تا نکته رو ذیل که یه نظریه است در واقع حالا ببینیم میتونیم از اون مطلب اول دفاع کنیم یا نه بحث تلازم یک نظریه از دوش در واقع در میاد. اول نظریه در خصوص اینکه آقا این که شما دلید میگید که معنای مفهوم معنای التزامی معنای منطوق است ملاک التزام چیه میگه آقا ملاک التزام این است که بین معنای مفهوم به صلا با لمشوین دوره مدرنیته از کنم بین معنای مفهوم و خصوصیتی که در معنای منطوق هست التزام باشد این بعض ملاک ارائه کردن بعضی دیگه های دیگه ارائه کردن که به کی بس کنیم ولی چون قول دیم خیلی دیر تمام نکونیم بحث تمام میکنیم راجع اون بحث رابطه التزامی باید بحث می‌کنیم همچنان چون بقیه هم میگن خودمون که اونو بیش قبول داریم اونو بحث کنیم وصلی الله علیه محمد و آله